أعوذ بالله من الشیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید برادرای عزیز مسلمان محترم موضوع امروز ما شما درباره نماز جماعت است و ما درس امروز را بخش تقسیم کردیم بخش اولش حکمت و فلسفه نماز جماعت است ما چرا نماز جماعت می خانیم نماز جماعت چی تاثیر داره در شخصیت فرد در شخصیت اجتماعی انسان در دولت سازی، در سیاست در نظام ایچی تاثیر داره حکمت ها و فلسفه است و بخش دوم ازیره در باره احکام نماز جماعت است که مثلا جماعت چی حکم داره کسی که مثلا به جماعت میره چه ثواب داره و آیا جماعت چیز عادی هست بعضیا میگن سنت است بعضیا واجب است چرا واجب است و کسایی که مثلا جماعت ترک میکنه حکم تارک جماعت چی است کسی که مثلا نمیره به نماز جماعت و بخش سیومش باز بخش عملی جماعت است که از بعضی از برادرای خود تقاضا خود کردیم که بعضی چیزایی که در جماعت است که عملا سرش کار بکنیم مثلا یک کس در جماعت استاد میشه چه خصم باید استاد چه و اگر ناوخت میه یک دو نفر میباشن یک امام است یک مختریس با چه خصم استاد شد و باز نفر سیومی آمد چی باید بکنم این بخش عملیش است بخش اولش بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و صلوات و سلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم در قسمت اول حکمت نماز جماعت است که ما چرا نماز جماعت می خونیم و اساس و فلسفه چی هست اصل چیزی است که وقت نماز جماعت خوانده میشه و سر نماز جماعت تکرار سیاد میشه خاطر ازی که در دین مقدس اسلام گوشنشینی و ترک دنیا نیست تقریبا عبادت ها که از در دین مقدس اسلام اگر پینجا فیصدش به خود انسان تعلق میگیره تقریبا پینجا فیصد تا زیادتر از پینجا فیصد حتی تا وقتی که ما حساب گرفتیم از شست الى افتاد کسد احکام اسلام که است در جماعت است در بین جامعه است در میان مردم است از این خاطر نماز جماعت که است یکی از این اساسات است که بر ما نشان میده که عبادت منفردانه را خداوند در بسیاری حالات قبول نمیکنه پس انسان باید از داخل جماعت بره و اینمیه است که ما حتی وقتی که دعا میکنیم باید در دعای خود فردی دعا نکنیم. دعای قرآن از امروشانه که مطالعه کنیم همیشه در قرآن از امروشان نیست که ربنا آتنا فی دنیا خداوند بر ما ربنا را تقریبا کدام چهل دعا هست که در اونجا ربنا آتنا. همیشه ما دعای ما امی بوده که قرآن بر ما یاد خدای خداي عزوجال یاد می‌دهد و حتی در احادیث شریف که ما اطلاعیم که خداي مربوبه‌ش. بلکه ما ایم پروردگار ما از کل گنی و بعد از کل مردم صحبت میکنیم. ربنا اغفر لنا خدای ما را بخش ولی اخواین الذين سبقونا بالایمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنه. ما شما مثلا در نماز نمی مثلا من تنها نماز میخونم لیکن دو وقتی که میکنم نمیده که ربنا آتینی بر مرده میگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنع عذاب نار خدای همه ما را از عذاب دوزخ نجات بته به خاطر ازی که انسان وقتی که در یک جامعه زندگی میکنن نباید همیشه به خود فکر بکنن چون خداوند رب العالمین هست و ما همیشه باید در نمازهای خود در های خود در عملکردهای خود شخصی فکر نکنیم به خاطر از اینکه علت شکست مسلمان ها از چه وقت شروع شد؟ از اون وقت که هر کسی به منفیت خود فکر کرد. والله منفیت ما باشه، بلا پس دیگران. اما در اسلام بگه نه انسان وقتی تو از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی وقتی که تو دیگران در غم هستند، تو بی بلا دپسانسایی و گشنه. حتی پیغمبر صلی الله و الله که لم یؤمن. قسم به خداست که ایمان نوردن. و الله یؤمن. والله لم یؤمن. سیمه که پیغمبر ص گفت که ایمان نوردن. قیل من یا رسول الله که ای رسول اکرم صلی الله علیه و, و سلم خاله اتادوچی راست میگه که که خودش شکم سیر خواب کنه و همسایش گرسنگ نباشه بنان حتی خداوند متعال جل جلاله این انسان ایمانش نمی پذیره که خودش سیر باشه خودش آرام باشه ولی همسایهش تفلکای همسایه چیز نداشته باشه مثلا خودش خانه 4 تا بخاری چالان کرده و بخاریش 24 ساعت چالان است ولی همسایهش بیچاره چیز نداره یک زغال نداره که دزیر ساندلی تفریش خواه کنه. ایمان ازیر خدا قبول نمیکنه. یا اگر نفر است مثلا در تابستان خودش یخچال داره، باتبکه داره، ایرکندیشان داره، کولر داره، همه چیز داره. در مقابل ازی امسای به چاری چکدانا پکی دیستی ندارن. وای به تفاوت از طفلاش میگه از گرمی مورد. دیگه سرت خداوند متعال این قسم ها را خوش نداره. بناهن دین مقدس اسلام پینجه ها فیصدش الی افتاد فیصدش موضوعات اجتماعی هست. مربوط به جامعه هست. از این خاطر اگر یک کس میگه من ترک دنیا میکنم پیغمبر سلام چی میگه میگه لا فل اسلام در اسلام رحبانیت نیست چی ما رحبانیت نیست؟ یعنی گوشنشینی و ترک دنیا نیست از این خاطر اگر یک نفر میگه من ازدواج نمیکنم و خاطر که من دیندار هستم اسلام میگه تو بیدین هستی نه نفر مگه من ازدواج نمیکنم، به خاطر از که من دیندار هستم مگره تو بیدین هستی تو ترک سنت کردی حتی سری وقتها نکاح سر تو فرض میشه واجب می پس تو دیندار نیستی اینالا ترک ازدواج در مسیحیت در هندویزم ببینین ما باید دین خدا بشناسیم در هندویزم درست است. در هندویزم اگر یک کس ترک دنیا میکنه میره در مندر همونجا قرار لباس نمی پوشه قضا نمی خوره قرار موجه افتاده او رو دینش میگه درست است زن نکو ازدواج نکو که مردم رابطه نداشت به اینجا قرار در مندر خب کن در دین از اونا درست است در مسیحیت چی از در مسیحیت یک نفر راهب راهبه میگن یک دیدرد جوانای کمربسته هستند یک تعداد دخترهای کمربسته هستند این ها و این دخترای کمربسته چی معنی یعنی که میگن ازدواج نمیکنن کردن قرار در کلیسا زندگی میکنن و ترک دنیا کردن در مسیحیت در دین از اونها هست اما در اسلام پیغمبر صلی الله علیه و سلم که لا راهبانیه در اسلام در اسلام گوشنیشینی نیست پس ما نباید با تاثیر به هندوئیسم خود دونستیم ما, ما خون مسیحی نیستیم. این ما نباید متعصر به مسیحیت و هندویزیم شویم اقاید و های از اونها رو ما هم سر خود تدبیق بکنیم نه در اسلام گفته که پیغنبست همه که ان نکاح و من سنتی فهمن راقی به سنتی فلای سمنی نکاح است و اگر کسی از سنت من دوری میکنه فلای از امت من است پس یک کسی که میگه من ترک دنیا کردیم ازدواج نمیکردم ازدواج نمیکنم چه مشکل بر شجاعت میشه کی از امت بودن پیغمبر صلی وسلم خلاص میشه. امت کی میشه؟ امت مسیحیا میشه. امت کی میشه؟ امت بودپرست ها میشه. نباید ما خدا از امت بودن پیغمبر صلی الله علیه وسلم بکشیم. بنا نماز جماعت یکی از اسافات شیعه است که یک نفر میگه من خوب نماز میخوام نفل میخوام پس آن باز ما احادیث شریف میخوام می خداوند قبول نمی کنه حتی از یک صحابی پرسان شد که فلان این نفر شب تا صبح عبادت میکنه ولی به نماز جماعت نمیرن؟ روند پیغمبر ص اما صحابی برا گفت گفت اید آتش دوزخ داخل میشه چرا به خاطر از که اساس دین مقدس اسلام است که ما باید به نماز جماعت بریم و تو باید عبادت خودمون از خلال جماعت بکنیم چرا پسان احسایسان ما و شما ایش هم خونیم اناله دین اسلام که وقتی وقتگیر ما به شکل کل می یکی از اساسات اسلام چی که مسلمان سه رابطه را مستحکم بسازند سه اگر از این سه رابطه دو تاش گریفتی یک شماندی هم درست نیست کدام سه رابطه باید باشن؟ رابطه اول است یک مسلمان باید رابطه با و امرای خالق مستحکم شد رابطه با و امرای خدای عزواجل باید مستحکم باشن چیزی که مخصوص خدای عزواجل است ایره باید به مخلوق نتن اگر نماز از عبادت است مربوط خالق است به خالق انجامش میتن اگر کوما است باید از خالق بخویم اگر شفا میخوایم خوام درست است ما دوا می گیرم تابلت می خورم مانع نمیشه تو دوا نگیر، شربت نخو پیش دکتر نرو لکن از عالم اسباب استفاده کو لکن فراموش نکن که شفا دهنده مسبب اسباب است او کسی که این وسایل اخر کردن بسیاری وقت آدم میره دوا را ما می گیرم عجیبه می گیرم خوب می کنه و دوا مرا خوب نمیکنه چرا چون شفا وابسته خداوند متعال جل جلاله است از این خاطر انسان باید شافي خود خداوند داشته باشن. رابطی اول با خدای عزوجل باید مستحکم شون رابطی دوم که هست رابطی دوم باید انسان رابطی خود را خود خود مستحکم بسازه. یعنی کاری نکنه که خود توهین بکنه توسط گناه انسان خود توهین میکنه. در جامعه از زشت معریفی میکنه به عزت میسازه. به کرامت میسازه از این خاطر میگن، تو باید رابطه تا با خدا و رابطه تا با خودت چشمتا منفی استعمال نکن اعضای بدنتا منفی استعمال نکن تا تو در نظر دیگران از بین نره اگر تو کت یک کس جنگ نکنی چرا تو کت بکس بزنه یک نفر در دا دان یک نفر مثلا بکس خورده اینجا داغ است پس این رابطه خودا با خود خراب کرده از این خاطر میگه که به خاطری که رابطه ایتان شخصیت باید حفظ بکنین حتی در نماز جماعت بسیاری کسا اشتباه میکنن مثلا دید که نماز جماعت استاد است اون از خبر شدن در اوچه در از که میگه چی گفن؟ چرا؟ درام میده در حال که بایغم بست سامنگه نه شما وقتی که اتا با نماز میرین دید که نماز جماعت است رابطه خدا با خود خراب نسازین بلکه با وقار باید بری. آهسته آهسته بیری اگر نماز گرفتن تا نیستی خوب اگر کدام رکاض از پیشت مان باست بخوان خودت تنهایی اما او به خاطر جماعت چرا؟ به خاطر ازی که رابطه خودت با خودت بناهن رابطه انسان با خالق انسان رابطه انسان با خود انسان و سیومی رابطه که از رابطه انسان با جامعی انسانی امسان وقتی که در یک جامعه زندگی میکنن باید رابطهش به امرای کسانی که همسایه ها و اقارب و دوست و همشهریان و حتی به شکل جهانی هست باید با اینا رابطی مثبت داشته باشن بعضی کسان مثلا فکر میکنه که تنها رابطی ما باید با خود ما مستحکم باشه اما دیگرها فراموش میشن پس از این خاطر ما شما در کتابای دینی میخوایم اسلام بر ما که وقتی که یک نفر همسایه‌ت بود و علو که کافر باشه سر توی یک حق داره که حق همسایگی است. بهن باید حق ازون رااد بکنی. اگر مسلمان هم بود همسایه‌ت بود باز دو حق داره یک حق همسایگی دیگه حق مسلمانی. باز اگر مسلمان هم بود و همسایت هم بود و از خودگی هم بود بازی سه حق داره. حق همسایگی، حق مسلمانی و حق صله از خودگی بنان انسان باید این حقوق مراعات بکنه از این خاطر انسان باید سه رابطه را مستحکم بسازه یک نفر از بسیار خوب با تقواست بسیار خوب با دیانت است بسیار خوب با ایمان است لکن ارتباطش با مردم بسیار زشت است چه قسم ارتباط زشت معلوم اون میشه مثلا از نماز نبراییم نماز خوندین نفر بسیار خوب آدم است خوب دعا میکنه خوب رکوع میکنه ولی وقتی که رابطش با امرای مردم درست نیست خدا نمازش قبول نمیکنه مثلا شما ببینید یک نفر در نماز جمع آمد اینجا جای از صف اول اینو وقت آمده ده تا نفر شیشه اثر از شانی ازو تیر اثر شانی ازو تیر شو بوتش کار میگه پای سر میگه نماز زیر خدا قبول نمیکنه ثواب نماز جمعه چی شد از بین دفت چرا به خاطر از به خاطر از در صف اول استاد چه رابطه خدا با خدا مستحکم بشه رابطه خدا با خلق خدا, خدا خراب ساخت مردم تشویش کرد اذیت کرد از خاطر میگه وقتی که در روز جمعه در مسجد آمدی حق نداری که اونجا جایز تو بیان یه این دهی ای قطار از مردم تیر شوی اگر تیر شدی ثواب نمازت از دست دادی خلاص چرا؟ به خاطر ازی که نه به خاطر ازی که والا من میخوایم که خدا راضی شود لکن ما این انسان ها چی کنم این انسان برش زرر برسانم برازی بدی بکنم نه باید خدا را خوش بسازی خدا چه وقت خوش میشه وقتی که در پاروی خوشنودی خداوند متعال جل جلوه جل خلق خدا را هم از خود آزردن نسازی بسیاری کسا در معاملش با مردم بسیار زشت است یک نفر بود که که کس نمیزد جنگی بود قار بود من برش گفتم گفتم برادر عزیز این انسان بسیار آدم خوب است و همیشه اعمال نیک میکنه و بسیار آدم با تقواه هست، قرآن تلاوت میکنه، این میکنه، ای میکنه، تو چرا از درده هستی؟ گفت او نفر بسیار فامیده بود بر من گفت که ولی استاد مشکلی هست که او رابطه خدا با خدا بسیار قوی ساخته لیکن با خلق خدا رابطهش بسیار ضعیف است. حالا من رابطه یه با خدا چی کنم؟ رابطه ایش کتمه خراب است. نماز میخوانه خوب میخوانه. روزه میگیره خوب روزه میگیره. قرآن خوب تلاوت میکنه. اما من هم سایش هستم. یا من هم اتاقش هستم. یا من در ایگه اتاق زندگی میکنم روشش بسیار زشت است. اخلاقش بسیار ضعیف داره بنا من از رابطش با خود شکایت دارم من از خاطر کس نمیخوام گپ بزنم اما اینکه مثلا رابطش چقدر با خداوند قویست، این رابطش با خداوند bond که قوی باشه اما رابطش که من ضعیف است آیا خدا راضی میشه از انسانه که رابطش با خداوند بسیار قوی باشه و خلق با خلق خداوند با مردم با همسایه با دوست با هم اتاق با همکار با کسی که در یک جای است همراه از رابطش زش باشه اون را با خداوند عبادتش نمیپذیرند قبول نمی به این خاطر که رابطه انسان با چیز خوب شود با رابطه انسان با خداوند خوب شود و با خلقش خوب شود تا رضایت خداوند حاصل شود انسان باید مسائلی که در جامعه انسانی است و اون سبب دوستی و محبت میشه مثلا سلام پیغمبر سلام نگه که شما چی کنین؟ ایمانتان تکمیل نمیشه تا وقتی که با یکی تان محبت نداشته باشی خیلی چی کنیم پیغمبر خدا تا که محبت پیدا بکنیم گفت چیز چیزه برتان نشان بدم که اگر شما این کار رو بکنین محبت در بایدتان ایجاد میشه گفت باید در بایدتان سلام بدین مشناسی یا نمشناسی مجرد که مسلمان بود باش بگه اسلام علیکم این سبب محبت میشه خب ایناله مثلا ببینن ابو سعید ابو الخير یکی از علما هست و از علمای زهاد است، از زاهدین با تقوا ها هست پیش از یک کس آمد برش گفت که فلانی شخص است که بالای آب را میره و فلانی شخص است بالای آب را میره برای چی گفت گفت مایه ها و بقام سر آب را میرن اگر یک نفر بتانه کمال خدا در سر آب را رفتن برای انسان کدام شخصیت حاصل شد پس ماییو برقرد انسان کدام باید بسیار ردبش حالی تر باشن. چون اونا هم سر آب میتوند نورمال دوین آب را میره خب او شخص برش گفت که نه فلانی شخص دیگه است کسی را میشنازم که وقتی که یک ورده بخوانه ده هوا پرواز میکنن میگه شخص برش گفت که پرنده ها و مگس ها هم به هوا پرواز میکنن اگه به پرواز کس دیگه ایش گفت این میتونه فلانی نفر میتونه که مثلا از یک شهر به یک شهر دیگه و بسیار سرعت برن شیخ برش گفت که شیطان هم از این اولایت به اولایت دیگه آجل میره خیلی شخصیت شیطان از انسان که بهتر بیتر باشه خیلی چی باید بکنیم پس ای چیزا گفت قیمتی نیست یا ارزش نداره که انسان سر او را بره یا انسان در هوا بگرده یا از انسان از یک شار بشار دیگه بسرعت برق بره خیلی چی ارزش میتنه؟ میگه بنده حقیقی بنده آن بود که در میان خلق بنیشیند بنده حقیقی است که بنده خداوند که در بین مردم میشیند و برخیزد و بخورد و بخصوت و خرید و فروش نماید و در بازار میان مردم داد و گرفت داشته باشد ازدواج نماید اولاد به دنیا آورد ولی یک لحظه هم از یاد خدا غافل نباشد بنده حقیقی هست یه رابطه اجتماعیش هم مستحکم است و در پاولیازی رابطهش با خدای عزوجل هم مستحکم است. خب عالم این سره نماز جماعت و ساختارش ساختار انسان اول میم در حیات فردی انسان نماز جماعت چی تاثیر داره این انسان مثلا اوضو میکنه بیایی به مسجد به خانه خدای از سواجت چی تاثیر داره در رفتن به مسجد و کسی که در نماز جماعت نمیره به مسجد نمیره چی نخص میکنه یک مثال از زندگی روزمره خدمت میشه. باز مثال بعدی شمه درباره آخرت میذیم. من به راجستم که آیشا سر تا را بسیار دوست دارم. بسیار تو دوست شیرین هستی که از کلی کلمات را زیاد دوست دارم. بیا یه چیزی میکنم سؤال می میکنم, میکنم چی دلیل داری؟ به چی دلیل؟ از کلی کلمات برای دوست داشتن آها از بچی کاکایم کاترا زیاد دوست دارم از بچی مامایم کاترا زیاد از دارم از اقاربم کاترا زیاد دوزارم، دارم از کلاگیم کاترا دوست دارم این برات چی میگم میگم خب چی دلیل داری که تو تو دوست داری مرا بزی دلیلت چی دلیل وقتی گفتم که من کاترا دوست دارم دوستی خودت نمیشه که بتو به زبان مرا گفتی من دوزارم. دوست دارم عملاً بده چی کردی که, که تو مرا دوست داری کدام روز خانی ما میدی کدام روز روزید رفتی خانه بچه کاکاید خانه بچه ماماید خانه فلانی خانه فلانی کدام روز آمدی خانه من بیس دفعه از پیش خانه من شدی یک روز دروازه من رو تک تک نکردی رنگ دروازه من رو می چه رنگ است؟ نه وله دوستی تو دو دروغ است دروغ است کوکی کی دوستی اگر تو من از بچه کاکای تو بچه مامای تو از رو تو از اولادای تو از کل از دوست که دوست میداری که اما تو که تو میگی خیلی تو کدام روز آمدید خانه من کدام روز آمده ششتی خب نه رابطه من با خدای عزوجل خدای عزوجل میگه والذین آمَنُوْ عَشَدُ وَحُبَّنْ لله کسانی که ایمان دارن محبتی چی دارن عَشَدُ وَحُبَّنْ من <تصال> ما <متر> دارم ایر دوز دارم ایراد دارم دار را دوس دارم کل دانا دوس دارم اولادای من دوس دارم برادر دوز دارم. من دوس دارم بچی کاکای ما من دوس دارم بچی مامای من دوس دارم لکن اشد حبن باید با کی باشم با الله باید باشم خب من خانی بچی کاکای میرم خانی بچی مامای میرم به خاطر از برادرم خفنشو خانی ازو میرم به خاطر ازی از که بچه حکم پیش ازو هر روز میرم اما مسجد نمیرم خانه خدا نمیرم خب در روز قیامت جواب خدا رو چی بگویم پیغمه سمه که ایمان شما تکمیل نمیشد تا وقتی که خدا و پیغمبر خدا احب به الهیمی ما, ما سواه ما که خدا و پیغمبرش از کل مردم که در برازو دوست داشته تر باشند وقتی که ایمانش تکمیلنی تا که خدا و پیغمبر از کل که به پید دوست زیاد نباشه. وقتی که او دوست قوی شد گفتی که الله در لیست اول دوستی و محبت ما با خداست. باید با پیغمبر خداست باز که شما دوستی میگن به شرده که شما با خدا و با پیغمبر خدا دوستی داشته باشه. این وقت باز انسان ایمان, تکمیل، ایمان انسان تکمیل میشه. خب آیا ایمان ما تکمیل است که ما خانی خدا را هیچ دروازه در حالی که خدای عزوجل ذات مهربان است و بر ما عمر کرده که تو روزانه پنج وقت بیا و با در بار ما و در واضح خانی من را باز و پنج مرتبه نماز بخوان و در جماعت بخوان ورکعو معرکعین وقتی که تو روکو میکنی در روکو عظمت من را یاد میکنی لیکن اینمی عظمت من را میگه تنها یاد نکو معرکعین بخون نه ولی خدا خدای من امروز در خانی بچی کاکای مصروب بودم امروز در خانی بچی مامای مصروب بودم امروز که فلان دوستم مصروف بودم و کل از اینا رو فراموش کردم و نامادم خب یک روز دو روز سه روز چهار روز پنج روز یک ماه دو ماه سه ماه یک سال دو سال پنج سال آلوخ نام خدا 20 ساله و بیست دو ساله و سوا بیست و 25 ساله و صاحب اولاد میشه چی میشه هیچ دیگه خلاص بتفاوت در مقابل نماز جماعت باز اینجاست معلوم میشکنه این فر اناله نماز جماعت چی میکنن رابطه من رو با خالقم چی میکنن از دیدگاه فردی مستحکم میسازه کجا میری خانه خدا میری اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم چی عادت داشتن میری یک صحابی را یا ابن زبایر عبدالله ابن زبایر ای عبدالله کجا میری عبدالله صدی اقدر عطر زدی کالای لوکس پوشیدی بسیار خوب خدا آماده کردی رفتی کجا میری کت کس ملاقات داری میگه بله امره که ملاقات داری میگه خدای از وجل ای از خاطر اینه میخسن که معتو به یک میمانی میریم آماده که اصحاب کرام به خاطر ملاقات با خدای از وجل به مسجد وقتی که میرفت چی میگه آماده که چرا این آمادگی؟ بخاطر از اینکه که من ملاقات کت خدا میکنم. یک انسان هم میرم بسیار خدا آماده میسازم و من پیش هزی میرم. بسیار باید لباس منظرم و, و شکل و چیزم. اما بسیاری کساست وقتی که در مزید که میرن به تفاوت یکی روی بیریزه کت زیر و کت لباس سپورتی و یکی روی بیریزه کت داخل مزید که میرن ده بوی وقتی که سجده میکنی قرمه بوی، اگه تو به مسجد اومدی، حتی پیغمبر صنمک وقتی در مسجد رفتی، اگر سیر خام خورده باشی، پیاز خام خورده باشی، گندنه خورده باشی، این چیزها رو وقتی که نوش جان کردی، خام وقتی که خوردی، میفهمی که یک تعفن از دهان تو خارج میشه که سبب اذیت دیگران میشه، از این خاطرت باشه که آدم نماز بخوان از طرف هم بو از طرف هم بوینه، بوی، تو باید بسیار پاک و صفا بری. بنان نماز ارتباط انسان با خدای عز و جل مستحکم می و دلیل ازی چیست که وقتی در مسجد میریم در داخل جماعت میخانیم باز ارتباط ما در خانه خدا دروازی خانه خدا را باز میکنیم که یا الهی من این به خانه کاکای ما ماندم خانه مامای ماندم مجرد مجلس بود خوب خانه ما قصه بود سریال بود فلانی بود لیکن پروردگار مجرد که حیا علی صلاح بیاین به نماز حی علی الفلاح بیاین به جای کامیابی محسن پنج وقت صدا میکنه. بیا این بجای کامیابی. مجرده که برای تو بیا بجای کامیابی. اگر استاد برات تو بگویه که اگر تو امروز در فروشگاه بیایی بازمت را دهن امروز میتون کامیاب میشه. در فروشگاه قرار درموند چارایی فروشگاه استاد باشه که پانزاد اقیقا. باز در نمره کامیاب میشه طورا میری میگه باید من کامیاب شدم باید... این استاده که خودش مخلوق است آجز از بیچاره است مجدد که ازرایل آمد دستاش دانش وادمان ام... امروز استاد سبا نیست اما فکر که خدای عزوجل نمایندی خداوند تره میگه نمایندی خداوند میگه که حی علی صلاح ده به نماز که در نماز خواندن در جماعت کامیابی است. حیه علی الفلاح بیا کامیابی میپولی، بله در کجاست بیا له خانه خدا. لکن میگنی ما ول آذان شنیدم، لکن بیتفات هستند. خب، بنابر ملاقات با خداوند شد وقت انسان به مزید میره گفتیم به خانه پروردگار میره و دعوت است به خانه خدای عز و جل. از این خاطر هر قدر که ما به خداوند، به کتاب خداوند، به کلام خداوند، به خانه خداوند، خداوند به خانه نیاز نداره اگر کس بگه خداوند خانه داره کافر و مشرک میشه ما میگیم خداوند خانه نداره به خانه نیاز نداره خی بیت الله رو چرا خانه خدا میگین قایم مسجد رو چرا خانه خدا میگین ما میگیم به خاطر ازی که اینا رو ازد بده خداوند متعال جل جلاله چون در مسجد عبادت خدا میشه چون در بایت الله شریف عبادت خدا میشه از این خاطر اینا میگن خانه عبادت خداست خانه است وقتی که ما حال مثلا شطر صالح علیه السلام خداوند گفت ناقه الله شطر خداوند شطران خب کل شطر است. خیلی شطر خدا گفت. شطران شطر خدا نیست. خب کلش است. مال خداوند است. مخلوقات خداوند است. دیگه نیه به خاطر ازی که این شطر را ازت بته. شطر ازت پیدا کرد که دیگه شطران را میتونی زبح کنی لیکن این شطر را زبح کرده نمیتونی. به ناین این را کنید. از الله در از نگید. این را زبح هنکنید. گفت که خانه خدا چرا بیت الله بیت الله کعبه شریفه به خاطر ازی که این خانه را عزت بده وقتی که یک اتاق جور کردی در یک تعمیر و سرش نشته کردی که مسجد خانه خدا شد باز او کار را که تو ده دیگه اون جای میکنی او قصه ای را که ده دیگه جای میکنی گپ دنیا را که ده جای میزنی باز اینجا اجازه نیست برات عزت پیدا کن روح موتور گفت خداوند نسبت داده به خود گفته در انسان ما از روح خود روح مخلوق است خداوند ما نمیتونیم بگیم که خداوند. خدا خداوند روح داره یا جسد داره که خداوند خدا به خداوند روح نسبت به یا بگیم خداوند روح داره یا جسد اعاذ این روح و جسد مخلوقات هستند این بدین میشه و گمراه میشه خیلی رو روح ما را به خود نسبت به خاطر که روح ما را عزت بده روح شما روح با, روح با عزت است مسجد با عزت است کعبه با عزت است از این خاطر روح شما با عزت تر هست از این خاطر روح انسان خداوند با نفخت فیه این روحی گفت از روح خود اما خداوند متعال ما به روح و جسد توصیف کرده نمیتونیم چون روح و جسد مخلوق هستن. این ایناله انسان تایوان پیدا میکنه با کی با خانه خداوند چرا این رو خانه خداوند می گیم چون یک مکان با ارزش شده بنا اندر تمام شار اگر بگردی بهترین جای در تمام ش... کشور کجا هست مساجد است مقدس و پاک و خوبترین جای مسجد است از این خاطر علما چی میگن میگن فرق از بین نشستن در مسجد و نشستن در بیرون از مسجد لحظاتی که تو در بیرون مسجد هستی لحظاتی که در بیرون مسجد هستی اصاب هزوارا مجبور استی به خداوند بتی در روز قیامت ساعت 8 کجا بودی در فلانی منطقه چی میکردی اصاب بتی به ملایکای خداوند اصاب بتی بشه. یک یک از اصاب میگیرن سات اشت ده کجا بودی اشت پانزه کجا بودی؟ اما لحظاتی که در مسجد هستی ای خداون خداوند بر تو حساب میده ببین فرقه لحظاتی که در بیرون مسجد هستی او رو تو به خدا می‌دی در روز قیامت لحظاتی که در داخل مسجد هستی ای رو اصابش خدا و تو می‌ده. در مقابل این نشست اقه در مقابل شرکت به این درزت این اقه خداونت رو احجر دار آنین خب به تفاوت نباشین که مثلا یک نفر میاد اینجا یک جوان اینجا میاد. و یک جوان در خانه خود فیلم فلم میکنه و یک جوان دیگه خوب زنجیر سکده شست میرسه در دوانی. یک جوانو دیگه از در لب سرکستاد از مردم آزار میده یکی دیگه مثلا سگرت میکشه یکی دیگه بیرون است فرق در چیه است که او از لحظات زندگی خود به خدای از جل حساب میته و فرسانش میکنه توی در مقابل ایسا و عید، اما این لحظاتی که توی در دا داخل مسجد میشینی یا ذکر میکنی یا نماز میخانی یا درس میخانی یا درس گوش میگیری یا ای کل ازیره یک یکی که خدای عزّا و جل بر حسابش می‌تاکد. در مقابل اینی دقت، اینی قصر جنت در مقابل اینی ثانیت، اینی باعهای جنت است. پس انسان مسلمان ببیند که چقدر از نعایب فرضی در ارتباطش با مسجد صاحب عزت و کمال میشه. با خاطر چی با عزت میشه چرا؟ حساب زیر خداوند می‌تا. به خاطر که هر لحظه که انسان در مسجد تیر میکنن شخصیت ازی ساخته میشه. شما؟ پیش چیزی که در درس بین و امون لحظه که از درس خارج میشید شخصیت تان پیش از اون و به ازی که از درس برام بدن شخصیت تان محاسبه بکنین. وقتی که از درس نبرایی راحت میباشی اطمینان می داشته باشی ملائکه ها سر تو رحمت میفرسته و در روز قیامت بردمه سلام قولا من رب الرحیم سلام است از سلام از طرف گیز قوله من رحیم از طرف ذات زلجلال است بر تو خداوند سلام می‌فرسته وقتی که خداوند گفت سلام یعنی سلامت هستی وقتی که سلامتی رو خداوند برات داد باز کدام مشکل در روز قیامت نمیداشته باشی باز نترسی از عذاب قبل. نترس از سختی روز قیامت نترس از اگر قیامت است سرکی قیامت چی میشه سر کسی که انسان گناهکار و بدین از وقت خدا زاهی تیر کرده. اما تو که در داخل خانه مسجد بودی یک وقت یک جای راکت میزدن راکت آمد آمد آمد یکی از انسان های دین شناس قرآن شناس اسلام شناس گفت که بریم در مسجد بشنیم ها با. آل خو راکت خود در این مسجد هم بید. گفت ایچ رای نزن اگر دا دا دا جای مردی امی گشت و پوزد اگر زیر دیوال سینما مردی اگر دیوال های سینما <تصفح> چی میشی اما اگر مردی در دا داخل مسجد راکت هم خورد خون و گشت و پوزدتو که مسجد مختلط میشه و دوزخ خاک مزید تا نمیدونه ازو خاطرماییدم یک نفر جیش سفید بود یک وقت ما خورد, خورد بودیم. استاد ما ما را میگفت که برین بچیم مسجد جارو کنید یک جیش سفید میمدیم جارو درستش ما میگفت توت بچیم خیر است ما کاکا بان کلان آدم است کالای پاک دست کو ما شاگرداست استاد بزر سر ما جارو میکنن میگفت که نه بچیم شما خانه میفهمید با هم وقت ما هم وقت من مسجد را که جارو میکردم با حساب میفتم استاد خدا خیر نده به زور سر ما مسجد هم میگه برو جارو کوچیک کن باز بعد از مسجد شوقکی جارو می‌دونم امیدی ریش بود درس استاد برام نداده بود استاد تام از زور خود کار گرفته بود ما چجوری کنیم خودمون گفتیم خودین جارو می‌گریم که خیر نبینی اما باز این ریش سفیدی منطقه‌ای که بی‌سواد بود بی‌سواد بود او برام یک درس داد اون چه قسم تازه که ما جارو به بفمرک ما جارو کنم کاک تو ریش سفید درس متخرد بچم تو بید. من احتمال کاک آخر یک روز گفتیم کاک تو چرا قشاستی که مسجد جارو کنیم بچم امیدی گردهای مزید که دروی در ما می‌شینه امیدوارستم که خداوند از اینم گدها ما را ببخشد چرا که در قرآن عظیمشان به گرد باهای های مجاهدین قسم یاد شدن با خود مجاهد قسم یاد نشود مجاهد بلکه پیش خداوند ارزش چی داره خود مجاهد چه قرضش داره و حزبش پلو... چه قرضش داره و حرکتش چه قرضش داره و وقتش چه ارزشی داره گفت خداوند متعال قسم خورد که به اونم هایی که از های مجاهدین دواده که به معرکه و با جهاد بر بزله دشمنان اسلام به او خداوند متعال جل جلو جلاله قسم خدا که والادیات دان فلموریات قفن فلمغیرات سبحان فاثرنا بهلا قن فوسطنا بهجما اذن ترجمه ابص میشین ببینید که همین همین تفسیر چلی میگه که والادیات چه قسم برتان ترجمه و تفسیر میکنه بنا در فرد من وقتی که ما به نماز جماعت میرم اول چی کرد شخصیت من تغییر داره انسانه که ده مسجد میره و ارتباط با خدا داره شخصیت از نکنه با انسانه که با خدا ارتباط نداره این انسانه که به مسجد میره این ارتباط گیره تا با سایر مسلمان ها و انسانه که به مسجد نمیره ارتباط با سایر مسلمان ها نداره نماز وقتی که انسان پنج وقت به نماز جماعت میره چی تاثیر دیگر در زندگی زندگی‌اشی داره در زندگی تاثیر دارد که نماز بر یک تقسیم اوقات میده صبح نماز صبح چند بجاست ساعت چند دقیقه فکس برش معلوم است پیشین چند بجاست دیگر چه قدر وقت یک تقسیم اوقات منظم بر انسان نماز جماعت یک تقسیم اوقات منظم در زندگی میده از این خاطر کسایی که پنج وقت به نماز جماعت میرن یا میترن که کل تقسیم اوقاتهای خوده تطبیق بکنه تقسیم اوقات خود تطبیق بکنه اما کسی که به نماز جماعت نمیره اج هیچ تقسیم اوقات جور کرده نمیتونه نماز پنج وقت تقسیم اوقات داره پس تو مسلمان وقتی که پنج وقت به جماعت رفتی و فهمیدی که من به نماز جماعت میرم خداوند بر من چرا این تقسیم اوقات داده به خاطر ازی که او مسلمانی که در زندگی خود تقسیم اوقات نداره این مسلمان حقیقی از پیرو حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نیست چرا چرا که یکی از تقسیم اوقاتهای اساسی که انسان می داشته باشه چیست دیگه چی, چی فایده داره نماز جماعت برای من برای شخص من کسی که به نماز جماعت میره کمال جا چی هست کمال وجهی است که در زیر حدیث سبعتن یظلههم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله در جمله اونون اف نفر شامل میشه که در روز قیامت در زیر سایه عرش خدای عصد و جل میباشیم. چی مانا زیر سایه عرش خداوند متعال میباشیم؟ خداوند متعال پیغمبر صلی الله علیه وسلم بر ما میگه که مطابق قرآن عزیمشان یک روز قیامت که از فی یوم مقدار مقداروه خمسین الف سنت من یک روز قیامت به اندازه‌ی 50 هزار سال دنیاست که شما حساب می‌کنین. اونجا دیگر نیست، شام نیست، خفتان نیست، تاریکی نیست، چی نیست؟ یک روزه. سی یک روزه، چی قزم روزه که کلگی اونم یه منتظر محاسبه هستن. چه قدر از مقدارش ام گفتم می‌دونین که به اندازه‌ی 1000 سال دنیا هم و به اندازه‌ی 50 هزار سال دنیا. یعنی روز بسیار طویل است. فکر می‌کنوید یک هزار سال باشه یا 50 هزار سال باشه؟ گپ سر عددش نیست. گپ سر طولش هست. که روز بسیار دراز است. روز بسیار خطرناک است. لیکن به این روز کلگی کل دغم هستن. یکی تا خود در عرق خود غرق است. دیگر تا زانوی خود غرق است. دیگر تا شکم خود غرق است. دیگر تا سینه خود غرق است. دیگر تا دانو... هر هرکس به اندازه گناه خود در هر قسمت قرار داره. هم کس لیکن لکن شما در استادیوم های ورزشی اگر دیده باشین، اینجا وقتی که در استادیوم میرین مسابقه هست، خب یک جای سرارت بسیار زیاد است، بسیار استادیوم کلان است و گرمی هم است یا روز بسیار باران میباشن، ما والا میرم دمی مسابقه در اینجا بوسکشی هست د استادیوم ورزشی کابل والا میرم بوسکشی بسیار خوش میرم سایل میکردم، خب بریم وقتی که میردم د یک تعداد مردمی هستن که اونا مقربین هستن بر از اونا سای بالی هم چتر هست در پایین هم ساید چوکی ها سایه هم نیست پیش باد بادپکه و یگپاه هم هست و لحظه بر لحظه براش آب سرد و آب یخچالی و یگپاه هم برش میرسن اونو مردم مقرب هستن ولی دیگه مردم در سر دندانه ها به چرا شیشتان علقه سر کردن در روز قیامت اینمه تو یک تعداد بنده های نازدانی خدای عزواجل هستن که هفت طبقه مردم هستن که یا کجا می باشن زیر سایی رحمت خدای عزواجل می باشن از این هفت طبقه دو تا هم میگم کل شبرتان نمیگم دوگاه شباز اگر خواستین اونجا درس در درس های ما در درس ها گفتیم شاید سیدیایشون باشه از هفت طبقی که زیر ساهی رحمت خداوند متعال هستند یک طبقه از اینا کسای هست پیغنبست و سلام میگه که در جای هستن که کل مردم در اخواری ها هستن یا زیر ساهی رحمت خداوند هستن فکر که در روز قیامت زیر چی باشی؟ زیر ساهی رحمت خدای عزوجل تشنگی هست نیست عرق هست نیست گرمی هست نیست مشکلات هست نیست پس از تمام مشکلات روز قیامت خلاص هستن کی این هست ایتایفه دو تا که امروز ما براتون میگیم یک تایفش کسایی هستن که قلوبهم معلقون بالمساجد که قلبهاشون با مسجد ارتباط داره معلق ما مثل که در مسجد میگه قلبش ویزان باشه تقسیم اوقات معلوم است الله الله در خبا یک مود زود کنیم که یک باشه نماز جماعت است از پشیمانار الله چهار نیمه نماز جماعت کیست؟ کی می نفر معلق قلوبم به مساجد همیل مجلسدان هر کسی که تقسیم پنج وقت نماز فامید اونم قلبش معلق هست با مساجد اگر هم از پیش سوال شود نماز صبح چند بجاست و 10 نماز پیشین چند بجاست یک فکس نماز دیگر چند است 4 نماز شام چند است دکم شش نماز گفتن چند است 8 و نیم. کسی که اینی می تقسیم قلبش با مساجد. چون میره این مردم میتونم بگم قلوب و معلقون بالمساجد وا دیگه یک طایفه دیگهش میگه یک طایفه جوانی که در جوانی به خدای عزوجل مشغول باشه کسی که انوز نوری شب رود کشیده نه جوان است نه جوان از 18 سال است 15 سال است 16 سال است 17 18 19 20 25 26 بر تو حساب تا حساب میگیریم خیر کازای کلوبوها ها قلبش با مسجد و یا در جوانی با عبادت خدای عزوجل ای با خداوند متعال جلو جلاله بگراد سریال میشینه ای در مسجد است دگرا گناه میکنه سگ بازی میکنه میره در میدان سگ جنگی یاماده در مسجد شیشان دگرا مثلا فلم سالمه میکنه ای در درس اسلام هست دگرا مثلا برنامه در برنامه‌های زش چینج این شست است در عکس خانه انضباط است در خنده بازار انضباط است در بازار کار دارد. دا در بازار اسمس میکنن برای این چیزها او افراد هستن که در قطار شیطان رفتن خب شیطان یا انسانیست یا جنی هست رئیس های تلویزیون ما کلش اگه نباشه یک اشتاد کیسه هستن خب شیطانای انسانی هستن چون تمام روز رقص نشون میگه. رو که بر جوان رقص نشون کرد شیطان است. شیطان است کسی که جوان را گمراه کسی که بر جوان خنده بازار جور میکنه کسی که جوان لوده می سازد. کسی که جوان رقاصه می سازد. کسی که جوان شخصیت از میبره کسی که جوان بی مان تربیت میکنه کسی گوشش میکنه که جوان 24 ساعت با فلم اندی و بر رقص به با عادت بکنه جوان زشت شوه جوان افغان ما بدون شک این شیطان انسانی هست شیطان هسته ایچ شک نداره. نه ما برش میگم خوشحال کم زوره نمیم چه بدار کم بخارن و همچه خلقه ای را کر. ما برش میگم که تو شیطان هستی تو رئیس تلویزیونه که در تلویزیونت در تلویزیونت چی در نشر میکنی که ای بزرزی که فرزند ای جامعه اولاد ای کشور اطفال ما ادیقل اد تو اگه شیطان نباشه در طفلای ما خدا هم بکن یهودا میخواد که اولاد امت اسلام گمرا شه نصرها هم میخواد که اولاد امت گمرا شود سکولر ها هم میخواسن که گمرا شون ببینید شون کمونیست هم میخواست این کارا بکنه و تو کسی که میگه من مسلمان هستم نیستی مسلمان به خدا شیطان هستی کسی که به خدا در روز قیامت در زیر پرچم شیطان میشه هر کسی که در رادیو کار میکنه در تلویزیون کار میکنه ژورنالیست از خبر نگار هر کسی که هست که او نیتش ای است که بخواد این فاصل شو. و برنامه را نشر میکنند که در اینجا فساد بر جامعه اسلامی باشه جوان های ما گمراه شون اطفال ما گمراه شون جنایت است و جنایت کار باید دوامک مد از صف شیطان هست ولو که هر قسم باشه و ولو به هر شکلی که باید باشه از این قادر کسی که قلبش با مزید است در زیر سایه رحمت خداوند مطال در روز قیامت حشر میشه و جوانی که از در از جوانی در عبادت خدای عزوجل مشغول است در های اسلامی در پروگرام اسلامی در مسابقه اسلامی در تفسیر در تفسیر شریف در تظاهرات اسلامی سهم میگیره در درس های اسلامی سهم میگیره در مجالس اسلامی سهم میگیره اینی جوان خداوند متعال جل جلاله مگه رای نزن من بر تو چوکی بودم که اون چوکی 50000 سال دوام بکنه دا کجا در روز قیامت که کلیگی غرق هستن ولی این جوان خداوند متعابی جل جلو باش میکه رزیر سایی رحمت خدای از زواج رای نزن بار که دیگر ها غرق باشه قرار میشه سعی که ببین که مردم چه قسم چیز خود اما تو جوان قرار در چبکی ششتی ها؟ یک گلاس ها یخ یک مدنی بره ست گلاس میرسه سایی رحمت خداوند با سایر رحمت شیطان فرق م کسایی که را رحمت شیطان است. وقتی که یک شیطان دید که خود شیطان خطا کرد، با دامن شیطان دیگه خدا پرسند اما کسی که از رحمت خداوند متعال جل جلوه بود میکنه، و هیچ وقت نپشیمان میشه و نکدام مشکل میدان شد از این خاطر شما جوانایی که در جوانی در مجالس درس میعین در مجالس در مسجد تفسیر نیت تانه خوب بسازن با خدایا ما در این مرزیت ببین در بی درست آمدیم پروردگار و خاطر رضایت تو آوردید آمدیم تو راضی شوی، تو خوشنود باشی و اگر خدا خوشنود شد باز این سال سعادت دنیا و آخرت نصیبش میکنن که خداوند متعال جل جلوح جل نصیب کل ما رو شما خب نماز جماعت دیگه چی تاثیر دارم مثلا ثواب نماز جماعت شما فکر بکنین نماز, نماز جماعت کس در اینجا عن عبدالله عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلی الله علیه و سلام قال حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی چی میگه؟ نگا رسول الله صلی الله سلام گفت صلاه الجماعه تفضل الصلاه الفذ میگه نماز جماعت فضیلت داره نسبت به نماز تنها گذار به 120 درجه 27 درجه ثوابی بیشتر است حدیث نمبر 9609 کتاب اذان بخاری شریف این حدیث شریف از بخاری شریف است کتاب الاذان با نمبرش هم 609 است <تضح> <تضح> یک مسلمان کوشش میکنه که در زندگی خود یک نمره خدا عالی ببره احیانا یک معصل در یک نمره اول نمره میشه دو نفر از در یک نمره اول میشه و دو, دو میشه چرا مگه ولادت از نمره من یک نمره فرق کرد او اول نمره شد شامل کدر شد و من به چهار خطا خورد از این خاطر بسیاری کساست که در یک نمره در روز قیامت انسان ضرورت میداشته باشه یوما یفرر المرء من آخیه و آمه و آبیه و صاحباته و بني لكل مرئ منهم يوما اذن شان يغني يوما یفرر المرء اتون از روز قيومات ميگه که آدم برادر خود و پدر خدا خد نامش نازم میگن نه ما نشینی که بیخن نامش نازم مشناز اخلاقی خدا بناش نازمی میپرده. یگان روز یگان کسی در موتر سوال است تو پیاده هستی نه خوب سن سلام خدا چی که نمیشناسه یعنی باز که صدایش کنی بگه یه هم در تو که سر بالا چون من فکر نمناشم ما توناشتو میوچ تو راهی چه جنان است در روز قیامت نیست که بلکه میشناسه میگه از برادرش و امه از پدرش و و و مادرش و پدرش و و وبنيه وفرزنداش و همسرش منهم يومئذ فرزن يغلي هر کل روز قيامت شما خدار احیانن پدر میگهبت چیم؟ ما من کل رو برای تو زحمت کشیدم چه خوب درشیه لکس لکس برات میخریدم چه خوب غذاها میاردم رشوتهای لکس لکس می‌گرفتم بعد برای تو درشیه لکس لکس میخریدم بچه ایم اینو رو دا مشکل دارم دیگ دا کات بچهش میگه پدرجان از امون چیزه که تو مشکل داری ما مشکل دارم بد که که رشوت خوردی جک زدی که حرام خوردی بد که که زمین مردم سرش کردی بد که که رفتی غلامی کردی بد که که وطن تا فروختی امروز ما بد فایده رسانده نمیتونم بچه بر پدر میگم مادر جان تو خو میربان هستی میربان بودی چقدر بر ما زامت کشیدی یه اگره بده کنم ترازیه هموالم پایین شده که به بجر میگه مگه بچه این اشکوم ما کو. ما هم از این چیز شکایت دارم که تو دوزو شکایت داری. ما کاری کرده نمیتونم. ما کاری کرده نمیتونم. ما هم این مشکل دارم. از خاطر میگه که یوم یا فرر المرء من اخیه و امیه و ابیه و صاحبته و, و, و, و صاحبته و فصیلته اللتی تویه اتا مقاوم و قبیله و فلانی که بخاطر از زیاد قوم قوم قوم مگفت دا زیاد دانو خدا چاک میگه زیاد دانشگاه مگفت دا زیاد پاندون مگفت کل قوم شو میگه مگه ما به دردت نمی از این خاطر میگه؟ در است که در روز قیامت این یک تو درکات نماز رو میخونی 27 درجه خداوند برات میده پس چرا مثلا ما در خانه خود میشینیم خوب صحتمند آمه هستیم از این مشکل خدا, خدا دور میسازیم قدم هایی که به طرف مسجد میره از نگاه فرد است تا ما شما در اجتماعی از نگاه فرد هر قدمی که به طرف مسجد میب... می چی فایده داره این قدمهات فرق میکنه موضوع داره در روز قیامت این ایمی... که مثلا موبایل است. نه ادمین موبایلت اگر یک ثانیه هم کف زده باشه حساب میکنه نمیکنه خالص حساب میشه حتی قدم های انسان در روز قیامت محاسبه میشه که چند هزار قدم به طرف سینما، چند هزار قدم به طرف سریال، چند هزار قدم به طرف گناه و چند هزار قدم به طرف خانه خدا. این قدم های انسان کلش یک یک یک یک, یک محاسبه میشه. ایجا پیغمبر پیغمبرستم چی میگه؟ عن ابی حریره رضی الله تعالی عنه یقول قال رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم عزت ابی حریره رضی الله تعالی عنه میگه رسول کریم صلی الله علیه و سلام گفت صلات الرجل فی الجماعه تضاعف على صلاته في بیته و في سوقی خمسن و عشرین دفن خب اینجا در این روایت ابو حرالی که نماز انسان در جماعت این میگنست بلندتر میشه ثواب از این نسبت بخ... نمازش در... در... در... در خانش یا در بازار مثلا در دوکان اصیده. اینجا نماز میخونن خمسن و دفن و سوابش بلندتر است مرتبه سوابش بلندتر است وذلك انه اذا توضعه میگه اي چی قسمی ثوابو حاصل میکنه وقتی که انسان وضو بکنه فاحسن الوضوء در وضو خود درست وضو بکنن بعضی كسا وضو میکنن اما احکام وضو رو در نظر نمیگیرن میگن بسیاری وقتها خودش فکر میکنه که وضو داره لکن وضویش درست نشد پشت بجلوه که شاز یگانه که خشک میمانه از یگانه که مثلا یک بغل روش خشک میمانه از یگانه که اورنجاش خشک میمانه از این خاطر میگه احسن الوضو ثم خرج الى المسجد باز میگه اینم انسان برآمد طرف مسجد ربت لا یخرجوه الا الصلاه میگه من به مسجد به خاطر دیگه چی نمیرم بیگم در مسجد دما مسجد میله هست بیگم در مسجد قصه هست بیگم در مسجد شیرخانی است بیگم در مسجد مستوی خانیست. نه میگم در مسجد میره الا الصلاه هدفش نماز خواندن است لم یخط خطوه الا رفعت بها درجه سبحان الله میگه هر گامی که طرف مسجد میمونه خداوند درجه خود به با درجه شوه ببرگای با خود بلند می سازه ده هر گامش هر کس میگه من به خداوند قریب شوم چی کسی به خداوند قریب شه میگم الان من میرم دست شمشیرم پیش شمشیرم لقدک زدم میرم کلمه دست رو شمشیرم انشاء شمشیرم میگه احمق خانه خراب برو مسجد به طرف مسجد برو در مقابل هر گامش خداوند بر تو چی کنه یک ردبه تره یک درجه تره و خود تعانه به ها خطیه مقابل هر قدمه که به طرف مسجد میمانی او یک درجه بلند شد و یک گناه هم خداوند عفو میکنه فا اذا صلاح مگه وقتی که نماز خان لم تزل الملائکتو تصلي علیه میگه انوز هم ملائکه ها بالایزی دعای رحمت میکنه خدای ببخش خدای ببخشش خدای ببخشش تداخت خانه, خانه ولی تو به تو همیشه ششتی که تو امروز در درست روز جماع آمدی به خدا در هر ثانیش ملائکه ها وین و چهار اطراف ما و شما هستن و شهادت میتوند پیش خدای عزوجل که خدای اینی بنده های تو آمده بدن در خانه خدای جمع شدن. جایی که فتنه ها زیاد است گناه ها زیاد است بدبختی ها زیاد است به خاطر زایته خداوند در مسجد اومدن نه کس رو پیسہ میدن نه کس بر تو کوک میدن نه کس بر فانتا میدن نه کس بر شیزا میکنه این های مسیحی که هستن بازی حساب میرن از جای دیگه دخترو ها میرن رقاص ها میرن و کباب میدن فلانی میدن خب چی کنیم بگو که عیسی وا خدا بود مگهوند روز ترا خدای <تصفيق> به چرا تمام روز مانده و زلم میگرد آخرام خدای داره در روز قیامت میگه وحنق من ذاتي از زواجال هستم من ذاتم به نیاز نداشتم لم یلد ولم یولد ولم یکل ولم یکل اما وقتی که ما شما اینجا می می هیچ قسمی نمی دان روز تلماس مصرف میشه تل موتر مز... تا مصرف میشه کرای رایت مثلا می تهیان مجبور می شدم پیاده بره. لکن هر گامی از که به طرف خانه خدا خدامیری و به طرف مسجد میری در مقابل ازو اجر بسیار عالی دارن میگه وقتی که نماز خان لم تزل الملائکه تصلی علیهم ما دام فی مصلاه میگه تا وقتی که انسان در مسجد شیشته چش میگه ملائکه های خداوند بالایش رحمت میفرستن چی بگن؟ بگم اللهم صل علیه اللهم رحمهم خداون دوای ملائکه را قبول میکنه میگه اللهم صل علیه خدایا بالای عزیز رحمت تن کن اللهم رحم او خدایا بالای عزیز رحم کن ولا یزالا آحاد کم فی منتظر صلات, من صلات. مگر حتی اگر تو قبل از نماز رفتی منتظر نماز هستی اینمی لحظاتی که تو منتظر نماز هستی اینم خداوند در جمله نماز حساب میکنه در اجر ثواب نماز حساب میکنه حدیث 611 کتاب الازان بخاری شریف است خب این قسمت ها بود در حیات فردی انسان نماز چی تأثیر داره نه در حیات اجتماعی انسان نماز چی تأثیر داره تأثیر نماز جماعت در حیات اجتماعی خود نماز جماعت هم میگن کلید روابط اجتماعی است این امیل کسایی که با سیستم روس و به سیستم غرب زندگی میکنن این امیل در افغانستان هم در کابل ما و شما هم کسایی که به سیستم روس ها زندگی میکنن با سیستم غربی ها زندگی میکنن خصوصا زندگی بلاک کس زندگی است به شهر مادم موتر من را گفتن من석 هما همین زندگی در بلاک مثل زندگی چی بارستن همین سیستم روسی و یا وارست. امسایت مردای امصایید دیگه جل میزنن هیچ خبر ندارن اما را... کلید روابط اجتماعی چیست کلید روابط اجتماعی در جماعت است به خاطر از اینکه انسان وقتی که انمی یک نفر مسلمان امسایت نه کوچ آوردنه همین که به مسجد اومد دو سه وقت کتش قدش... کل منطقه آشنا میشه سلام علیکم ماندانه باشی خیریات است که نه او کوچ آمدیم اینجا هستم اگر مریض بود پسران مریضش میرین یک نفر مسلمان است یک مابات میبینش کجا بودید حالا مریض بودم گلام میکنن که ما پرسال من کردیم آخر بارشو گفته نمیدن دلالم گفتم خدا خانه ایت خراب کنن خودت هم مسجد نمیای نماز جماعت اگر میامید ما میفهمیم که یک وقت نامد دو وقت نام از سه وقت نامه والام یعیسی فلانی چی شد همین مدیر صاحب چه شد همین فلانی چه شد اما وقتی که تو هیچ به مزید نمیای حالا ما تو خب چی که تو مریض هستی رابطه اجتماعی از طریق مزید چه میشه مستحکم میشه شناخت و محبت پیدا میشه یک نفره که در مسجد که آشنا شدیم محبت بسیار قوی تر نسبت به هر دیگه که در سر را و بازار اینجا کهش معرفی شده به خاطر که تو امرایزو در خانه خدا معرفی شدی از این خاطر کسانی که در مسجد رابطه اجتماعیشان بسیار ماکم است مردم اطراف وقتی که در مسجد میرن میگه برو فلانی مسجد بگو فلانی مسجد خبر که فلانی مسجد تو عاق جمعه تو عید فلانی خان فلانی کس فوت کرده کل مردم در مسجد کمی بو کل مردم چون مردم در وقت نماز از کل چیز خبر میشن از مریض خبر میشه از کل رابطه شماشون بسیار مستحکم هستن حتی اون که در مسجد درس میخوان با طفلا که در مسجد درس نمیخوان در تربیه خود فرق میکنن اون طفلی که در مسجد درس خونه از مسجد که برمیاد میگه سلام السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، عدا قلب میگه اون طفله دیگره که ببینید سر طلقلق سایه میکنن جوان شده انوز تربیت یاد نداره که یک سلام علیکی بکنه از این خاطر کسایی که بمذید به نماز جماعتن میرن، ببین کابل هم ما دیدیم که حتی یک نفر یک سال یک کنیم سال همسایه هستی لا نمیشناسیش. از کجا میشناسیش خودت تا میره خانه خود میبره از خانه خود میبره. اما اگر یک نفر یک افتاد یک منطقه رفت نماز میکنه، وقت کل مردم امراض و دوستی پیدا کردن. اینمی کلی در روابط اجتماعی چیست نماز جماعت است. نماز جماعت راه برای حل مشکلات است. بسیاری مشکلاتی که ما داشته باشیم این مشکلاته بسیاری وقت اون تیم مریض است کی جور است کی فقیر است کی بیچاره هست؟ یک نفر احمد پیغمبر سلام تجرییان خطبه بود بسیار فقیر بود اصحاب متوجهی بودم که فقیر است پیغمبر سلام برایش شارکت گفت فلان جان نماز تحیت الملذیه تا خواندی درکات نماز گفت سب صاحب نخوادیم گفت بخی بخان این خیس صاحب درکات نماز خوان وقتی نماز خان که خیسید نماز خوان کولگی متوجه شدم که لباسش کورهش رو چطور است فورا کمک کردم و همکاری کردم بنابراین بسیاری مشکلات انسان از طریق مسجد حل میشه بسیاری مشکلات از طریق مسجد حل میشه دیگه فلسفه نماز چه است که جماعت برای سمیمیت و دوستی و محبت است که پیشتر بردان گفتم که انسان وقت ارقدر با مسجد مستحکم باشه به با مو اندازه به امرای مردم سمیمیت و دوستی و محبت پیدا میکنم دیگه نماز جماعت که است اعلان مساوات از بین انسانیت شما ببینین در هر جایی که برید در یک محفل میرین خوشش که رئیس‌ها در قطار اول بشینن، صیب رئیس‌ها و وزیر یا در قطار اول میشینن، تو میخواین چه بشینین؟ یک نفر از دست میگره میگه نه بخی تو برو پشت سر. باز میره در قطار دوم میشینی میگه نه این قطار دومه که برای مدیرای عمومی قطار سه اون برای است قطار سوم برای استاداست، قطار چهارم برای فلانی است. خب ما بیچاره چطور توگم تو برو قطار بشین. احیارا تو استاد, استاد میمونند. اما در اگر یک وزیر بیایی کتی یک پیاده اونم پیاده کامده میستن فوال ششت وزیر حق نداره که بگه بگوید تو پس بناهن اعلان مساوات است. چرا؟ چون این خانه خدا هست. در حکم خداوند پیش خداوند وزیر و رئیس و مامور و مدیر استاد شاگرد و محسل یا کلش کلکم من آدم و آدم انتراک کلا حق مساوی دارن. کلیه حق مساوی دارن در اینجا برتریات کسی بالای کسی دیگه نداره هر کس که اول آمد در صف اولشونه این قانون مساوات بالای زیر تطبیق میشن صف‌های مسجد که اس نماز جماعت که هست، مثل صف‌های ملائکه هست بنا انسان وقتی که در مزید داخل میشن از شخصیت انسانی که در بین ازوش یک کمک حیوانیت هم داخل است اینجا انسان به یک ملائکه مبدل میشه در صفحه های مزید سعی کنین اینجا حدیث شریف از انجابر ابن سامورته قال قال رسول الله صلی اللہ علیه وسلم مگه میگه بس هم گفت آیا صفح جور نمیگنیم مثل صفحه های ملائکه ها واره اندربه ها قال نکه و تا این خدا ها چه در مقابل پروردگار خود و چی میکنن صفونی مل که اول صفحه اول مکمل پوده میکنن. اگر میخواهی که مثل ملیک هاور شوی کمی آمدی اول صفحه اول بیشی. و وبعین یکی دیگه خود فاصله همگذاره یک آنه که هست می اصطاعت شده پالوی یک مطر رو طرف استاد است چرا؟ جنگیستی؟ نه؟ چرا اون طرف هست؟ بیم پیش پر پالاو این حدیث شریف کتاب و اقامت سلات و سنة فيها در ابن ماجه یک کتاب حدیث شریف است کتاب ابن ماجه بحثش برام کتاب اقامت سلات و سنة فيها حدیث دو خب این شد تاثیرش از نگاه اجتماعی میم در جامعه از دیدگاه نظام سیاسی جماعت چی دارن؟ هایا نماز خواندن جماعت در سیاست و دولت و حکومت هم تاثیر دار؟ بله اول تاثیر چیه است که شما ببینید که امام مقایسه میگونی با رهبر. اول امام باید دارای صفات عالی باشه صفات عالی چی باید باشه؟ که مثلا باید مسلمان باشه، عاقل باشه، بالغ باشه، علم داشته باشه، تقوا داشته باشه این صفت ها را باید کی داشته باشه؟ امام داشته باشه وقتی که تو امام در مسجد تعین میکنی دائرهای اینمی صفات میگه وقتی که چند نفر یک جای بادن کی باید امامت بکنن؟ کسی که در بین از اینه عالم تر باشه و عالم در چی باشه؟ زیادتر عالم در کتاب خداوند باشه تا که حکم خدا را سر خود و سر دیگران تطبیق بکنه نماز ما رو خراب نکنن. عین صفات باید در اختیار رهبر باید داشته باشن مسلمان ها. دست را تا این بکنن که واقعا عالم باشه و کسی باشه که با کتاب خداوند بیشتر بو با خاطر ازی که او هم خود اسلام بکنه و هم جامعه اسلامی حکومت مردمه به شکل درست منظم قیادت و رهبری بکنه. بابا دههو گفته که اطیعوا الله و اطیعوا و اول الامر منکم اطاعت بکنین از الله و اطاعت بکنین از رسول و اطاعت بکنین از رهبرتان. لا اینجا چی گفته سعی کنین اطیعوا الله و اطیعوا و اول الامر منکم. نگفته و اطیعوا اول الامر منکم. الى مفسرین کرام چه قسم تفسیر میکن؟ مگه بخاطر ازی از اولیل امر از رهبراره. اینجا نگفت اطاعته لیکن گفت اطیق الله و اطیق رسول و اولیل امری من کن. یعنی ترجمه شیقه اطاعت الله بکنین و اطاعت اولیل امر رسول بکنین و از الامر تانه لیکن میگه بخاطر ازی اطیعه او را نگفتن که اطاعت از او شرط است با ای که باید او خود رهبر اطاعت خدا و پیغمبر را بکنه اگر رهبر اطاعت خدا و پیغمبر را نکنه سرما اطاعتش فرض نیست و حکم خدا نیست به شرط اطاعت از او میشه که او خودش اول اطاعت خدا و رسول خدا را بکنه نماز جماعت مثلا برداباری و تواضع امام همیشه امام که در نماز جماعت می باشه انسان بردابار می باشه متواضع می باشه اگر از پشت، اگر کدام اشتباهی میکنه از بیرون سر برش فتحه دادم میشه گفتم میشه که اشتباه کردی تکبر نمی کنه که ما شما رو قبول نمی کنه فورا متواجی اشتباهی خود شده اصلاح میکنه کنه اون از این خاطر وقتی که امام میخوسته میگنه باید رهبر حکومت اسلامی هم متواجی ازی باشه که اگر اس پشت سرش کس بر میگه کس که اینی اشتباه را داری باید فوراً اشتباه خود متوجه شو. حضرت عمر روی الله تعالی یک روز مثلا درباره مهر گپ میزد. یک زن خیز برجه که فه تو مکتوب نفهمید حکم خدا را. گفت چطور خورد چی گپ گفت که گفت خداوند گفته که اگر یک زن مهرج بندازی یک کوت طلا هم باشه که حق نداره درو چیز کنه. حضرت عمر چه گفت که عصابه المرء و اختا عمر راستی تو زن راست گفتی و من اشتباه کرده بود. رهبر او قسم از که وقتی اشتباه بکنن بر اشتباهش فامانده و فورا اشتباهی خودن بپذیرن ارتباط دیگه چی است که ارتباط امام همیشه با اهالی و مردم میباشن امام همیشه ارتباط داره با کسانی که مقتدی هایش هستن و اهالی هستن همیشه برنامه‌ای هست که اولادها از اینا باید درس بخونن تعلیم بکنن چه اینا خودشان اصلاح شون و برایشان رهنمایی میکنن راه نشان مشکلات مشکلاتم راهشان هست در خوشی ها هم است در هم حالت بنا ان وقتی که نماز جماعت یک قسم است وقتی که دولت اسلامی هست باید رهبرش عموت کسی باشه دلسوز بر جامعه باشه که اولاد مادو باید تربیت درست شون جوانای موبایل تربیت درست شونن، فامیلای باید تربیت درست داشته باشه، مردم باید تربیت درست داشته باشن، دخم شریک باشه در خوشی هم شریک باشه. ازی خاطر حضرت عمر بن عبدلaziz میگم که والله میگم قسم به خداست که اگر یک گوسفند یا یک قاتل در سر کوی عراق که بسیار دور بود، به فقره در اون سر کوه اگر یک گوسفند لول بخوره، در روز قیامت خداوند مرا پرساند میکنه که چرا اون راه را بر از مو گوسفند را گوسفند را جور نکردی که گوسفند میچاره لول خورد؟ ماتوب مثلا راه انسان ها بیوه های ما به سر نوشت هستن اطفال یتیم ما به سر نوشت هستن یک یا یکونی میلیون وقتی که ما شهید دادیم اولاده از اونا کلشان به سر نوشت هستن و بسیاری کسا ادعای رحبریت و رحبری اسلامی و حق میکنن ولی در فکر ازی یتیم و بیچاره و بیوه و غریب و مسکین نیستن مهاجرین هستن کسایی هستن که خانه ندارن کسایی که خانهشان از بین رفته ولی جناب عالی که بسیار خدا با تقوا می گیره و با ایمان می و این ببینه که صاحب در بسیار لوکس سوار میشه و صاحب تا کوریسیون نگام از پشت سرش است لکن در فکر یک یتیم و بیچاره و فقیر نیست ای باید دو فام که در روز قیامت از یک یک رو پید در مقابل خدای عزوجل جواب میده دیگه در نماز جماعت حیات اصلاحی می باشه حیات اصلاحی چی مانا؟ همیشه قانون ای است که وقتی که امام نماز میده باید که اول که در پشت زیستاد استاد میشن کسایی که در پشت استاد میشن باید اینها هم علما باشن چرا؟ که اگر امام کدام مشکل بر شیجات میشه فولا از جمله از یک کس را خود ماون بگیره که نماز زیره پیش ببرن. از این خاطر امیشه در نماز جماعت امی قانون است. و در دولت هم باید کسایی که امرای رهبر دولت هستن اونا باید کابینهایی که امرایزی میباشن شخصیت های عالم با تقوی با دانش و با ایمان باشن که مجرده که امام اشتباه میکنن یا فولا برش غلطی مثل که به نماز که اشتباه کرد اون نفر عالم در پیش استاد است آیه غلط کرد حدیث غلط کرد رکات نماز غلط کرد فوراً برش میگه که تو اینجا غلطی کردی در دولت هم باید این نمی قسم باشه که او آیاتی که اونجا هستن همیشه برازی از بفهمان که تو اینجا غلط کردی، اینی حکم درست است، اینی حکم غلط است، اینی روش غلط است تا که این باشه. رهبر مسلمان همیشه کوشش میکنن میگه میکن برای کسی که خداوند بدی میخواد ما حول حضور انسانهای زشت و پلید قرار این انسانهای زشت و پلید همیشه برازی بگه یک وقت فرعون میخواست که مسلمان شد. فرامان گفت فرامی موسی علیه سلام بچه خاندیم هست من این بچه خاندیم بیخیر دیوانه کرد هر روز آمد کته مشاور خود که آمان بود امروز این مشوره کرد قطع از این مشوره کرد گفت آمان جان من میخوایم که چی کنم دلم هست یک کلمه بخانم که دست از این چیز خلا شدیم آمان بچه گفت چی میگی چی میگی چی میگه سهب چی میگی صحب صحب صحب شما صحب شخصیت خوب هستی صحب صحب چی طور هستی صحب فلان همین چاپالوزی ها که درگرد گرده همین رهور ها و رئیس ها و وزیر ها و ترا همیشه اک ششتا چاپالوز گرده شا گرفته بعد من را میگه و بعد ترا میگه و را پور غلط هم میبره پیش از وان میبره بسیاری وقت هم ما دیدیم ناق و ناروا دیدیم که یک رئیس سرماق آل مقال انداختن آخر فامیدیم ف برش گفت که فرانسه تو چی میگی؟ اشتباه هست توی گفه میزنی؟ تو دعوای خدایی کردی؟ حالا که تو کلمه بخوانی خب باز تو بنده میشی؟ که کل مردم بازم رای تو مساوی میشه؟ باز تو این مقام همه باشی؟ این منزلت همه باشی؟ تو باز با امودایی سایر مردم حقوق تو مساوی میشه؟ باز یک غلام هم که تو یک جای نان بخوره، تو خواهد سر مردم در طبنگ میشه تو. فران ها عادت داشتن یک تخت روان داشتن طبنگ باره باده اون میشیش باز غلام از این طرف داتا غلام, غلام دیگه یانسه بازی انتقال میدارد سر از این طرف طرف میاد توی قدر مقام داری عزت داری کرامت داری فلانی داری فلانی داری فران گفت خوب و فا گفت نشوش کنشی خوب سهی ساله بس. از زیدگاه اسلام کست برای رهبر مسلمان یک روز یک رئیس بود در یک جای خودش بسیار خوب آدم بود که میرسید جور پرسانی بود خب می همین سکرطر از فقط اینمی تازی واره بود او دندان میگیره من یک کس گو که فریس بسیار خوب آدم هست ما هفته نه خوب آدم نیست گفت چی دلیل دارم من هفته من خوب آدم, آدم, آدم, آدم میبودی سکرطر سکر من میساخده این رجان این حال از دیدگاه اسلام امام مسلمان باید در پشتر سر خود کسایی که اصلا باید پشتر سر از این علما باشند و رهبر مسلمان همیشه حیات مشورتیج باید چی باشند اول مردمای های با تقوی باشند یا اگر نفر می پالم می پالم می پالم اگر خوب آدم است. آه ول بشه خوب آدم است. چی که داره؟ فلان این افراد سر نواز لندن آمده و عرض گرفته مسئول کارهای خود ساخته. خوب مردکی که لندن آمده تمام روزی دکزانه آلا چیست و کت شامپو می رخسا و بیخی چی است دیگه با چی میگن؟ دکتر خوب کت شامپو او در اونجا در... در... مردم در لندن دلار به بهار بلش لش افتادن. آری دختره که به چرا یک رخ کت شامپو که دگلی چی فرق میکنه؟ او خودت کرده دیگه. خودت کرده اگه تو کل منطقه یک آدم مسلمان با تقوا و با دینت نیفتی این معلوم میشه که شیطان در وجود خود اینه نمی که ایراد تعیین کرده در حالی که وقتی انسان رهبر مسلمان باشه و ایمان باشه همیشه ماون خود مشاور <متحر> خود اعضای مجلس خود کسایی که تسونام مشوره میکنن انسان های با دین و با تقوا اینا می تعیین میکنه که برش برش بگه که تو اشتباه کردی و غلط کردی و چیز کردی یک تاچو بود یک با تقوا را گفت گفت سایه بر گفت خدا بکشید گفت چرا؟ گفت خواهد تو از گناه میشی؟ با مردم از شرط بیغم میشن یعنی فایده تو هم فایده مردم هم شد من دعا کنم من به فایده تو هم به فایده مردم خدای پاک حلاکت کنم هم دستی ها باچه فورا نیدیم یک کپشت مطاقیشت اگه ویدئو موخرم گفتم خدا که ما بشر دعا کنیم به خیر دعا کردیم چرا که تو که زنده باشی نه اینا میال بموری حداقل تا دیگر صد نفر لط میکنی اونو صد نفر از شر تو خلاص شد و این صد نفر که لطمه کردی گناه‌کار شدین این از گناه خلاص شدی برن ما بر گفتیم خدا بکشه نه دعای خیره در نماز جماعت اطاعت امام تا وقت بالای انسان واجب میشه که او امام نمازش و حرکاتش مطابق قران و باشه حکم خدا را سر خود تطبیق میگنه تو پشترش نماز میخونی. دیره که امام صاحب در نماز دکه روز یک کس آمده بود امام بگه سمی اللهو میگه سومی اللهو. او خانه خراب والقیاد ندارید پیش نشون. با سر تو خیطایت ازو نیست که نماز بگه برادر بگه و حالا سر من یک کسی گست میخوند آ تالف که مت آوردی یعنی که آ یا خدا بزرگاست اینا ده الله میگه من فهمیدم میگه کسی که به علم شیخی کا نه عم دو کفر بس عم که کفر بس کسی به علم شیخی و استادی می همین کفرش بس است پدر کلام همیشه مرا میگه میگه که انسان جاهل شیخ یا کافر بیمیرد یا دیوانه گردرد علم نداره؟ از خود بر مردم گفتم میره میره میره یا داخل دیوانه میشه و یا کافر میمیره. بسیاری کسا از من والا نماز میتونم نماز دادم بسیار کار آسان نیست که هر کس پیش شد و این نماز میتونم نماز میبین صدا الله الله اکبر فورا به خاطر ازی که احلی فکر دادی در اینجا در زبان عربی اینه میالف که مد میگره امی امز فتحدار این چیستم بر, بر سوال میگه ازای فی فل بیت فی بیت یک نفرم میگه اخال دن فل بیت آیا خالد در خانست وقتی که نمیده مد دید نمازش خراب میشه این ای خاطر اطاعت تا چی وقت است تا وقتی که اون مطابق حکم خدا روش میکنه و به شکل در رهبر جامعه اینو پس که تا وقتی اطاعت از اون بالا انسان واجب می باشه که مطابق حکم خدا و حکم پیغمبر خدا کار می خب این بخش اول ما درس ما خلاص شده اینال بخش دومه اگر می خواهیین اگر تن کنیم باز از باد از اون شروع می کنیم سیز سبحانکالله شروع